قصه های هزار یک شب شب پنجا و سفم. ملک هردوب به دانشمندان مال بیکران وعده کرد و دختران را نیز حاضر آورده به حکیمان سپرد و گفت که حکمت و ادب و اشعار و تواریخ به دختران بیاموزند. حکیمان فرمان پذیرفتند. ملک هردوب را کار به دینجا رسید. و اما ملک نعمان چون از نخجیرگاه بازگشت ملک ابریزه را به قصرندر ندید. تفتیش کرد، خبری نیافت. این کار بر او ناهموار شد و گفت چگونه دختری از قصر بیرون شد و هیچ کس بر او آگاه نگردید. اگر مرا مملکت بدین گونه باشد، سلطنت من سودی ندارد. پس به دوری ملکه ملول و محزون بود که ملک زاد شرکان نیز از سفر بازگشت. ملک نعمان ماجرا بر او بیان کرد و از رفتن ملکه آگاهیش داد. شرکان در بهر اندوه اوته خورد و شبان روز در فرقت ملکه همی گریست. اما ملک نعمان پس از چند روز ملکه را از خاطر فراموش کرده به تفقد زوال مکان و نزهت و زمان بپرداخت. و علما و حکما به تعلیم ایشان بگماشت. شرکان از کردار پدر در خشم شد و به برادر و خواهر رشک برد و به دین سبب رنجور گشت روزی ملک نعمان با شرکان گفت چون است که تنت نزار و گونت زرد می شود شرکان گفت ای پدر هر وقت بینم که تو به اولاد صفیه مهرمان می شوی و با ایشان نیکوی می کنی، مرا رشک میآید و و بیمزان دارم که رشک بر من قالب شود، و ایشان را بکشم و تو نیز به سبب ایشان مرا بکشی و از این جهت نظار و زرد همیشم تمنی من این است، که شهری به من واگذاری که من در آنجا به سر برم و عمر بگذارم چون ملک نعمان این سخن بشنید و دانست که سبب ملاولتش چیست به دلجوی او برآمد و گفت ای فرزند هرچه تو خواهی دعوتت را اجابت کنم و در مملکت من بزرگتر و محکمتر از قلعه دمشق جایی نیست آن را به تو دادم پس منشیان بخواست و منشور ایالت دمشق بنوشتند. ملک زاده سفر را آماده شد و وزیر دندان را نیز با خود ببرد. پس پدر را ودا کرده همی رفتند تا به دمشق رسیدند. مردم دمشق به استقبال پذیره شدند و کوس و نای بزدند و شهر بیاراستند و شادی همی کردند تا اینکه شرکان به شهر اندر آمد و در مقر خود جای گرفت و اما ملک نعمان چون پسر را بدعا کرد حکیمان و دانشمندان نزد او بیامدند و گفتند که فرزندان تو حکمت و ادب بیاموختند ملک از این بشارت فرحناک شد و به حکیمان بسی مال داد و مکان را دید که بزرگ شده و چهارده ساله گشته مایل به عبادت و دوستدار فقرا و اهل دانش است و زنان و مردان شهر بغداد او را دوست میدارند و حال بدین دین منوال بود تا اینکه در بقداد محمل عراق از برای زیارت مکه معظمه و مدینه منوره بسته شد. زوال مکان چون محمل حاجیان را بدید آرزومند بیت الله الحرام گردید و به پیش پدر رفت و اجازه سفر مکه خواست. ملک نعمان ممانعت کرد و گفت صبر کن که سال آینده من خود به مکه خواهم رفت ترانیز ببرم چون زوال مکان دید که این وعده دیر خواهد کشید به نزد خواهرش نزهت و زمان رفت دید که به نمازی ایستاده. چون نماز ادا کرد زوال مکان با او گفت که مرا شوق زیارت مکه و قبر نبی علیه السلام اندر دل است و از پدر اجازت خواستم جواز نداد قصد من این است که پارهی مال برداشته بیخبر از همه کس به هج روم نزهت و زمان سوگندش داد که مرا نیز با خیشتن ببر و از فیض زیارت محرومم مگذار مکان با او گفت چون شب درآید و ظلمت جهان را فرو گیرد از این مکان به درای و کس را آگاه مکن. از چون نیمه شب شد نزهت و زمان برخواست و پاری مال برداشت و جامعه مردان پوشیده به در قصر روان شد. دید که برادرش زو مکان آماده کرده و به انتظار ایستاده. هر دو به اشتر سوار گشته شب همی رفتند تا به حاجیان برسیدند و در میان محمل عراقی جا گرفتند و شبان روز همی راندند تا اینکه داخل مکهی معظمه گشته مناسک حج به جا آوردند و از آنجا به زیارت قبر نبی علیه السلام بیامدند پس از آن حاجیان قصد بازگشت کردند زوءالمكان با خواهرش گفت که میخواهم به بیت المقدس بروم و ابراهیم خلیل را نیز زیارت کنم نزهت و زمان گفت مرا شوق از تو فزونتر است پس چار پایان کرایه کرده با مقدسیان روانه شدند ولی نزهت و زمان را آن شب تب بگرفت و زود خلاص یافت پس از آن زوال مکان رنجور شد و خواهرش پرستاری و مهربانی همی کرد و همین رفتند تا به بیت المقدس برسیدند بیماری زوال مکان سخت شد در حجره کاروان سرایی فرود آمدند و زوال مکان را رنجوری هر روز افزون می شد و نزهت و زمان به خدمتگذاری مشغول بود و از مالی که با خیش تناورده بودند سرف می کرد تا اینکه که پشیزی از آن مال نماند و سخت بیچیز شدند آنگاه از جامعهای های خیش به خادم سرای داد که به بازار برده بفروشد. چون به فروخت قیمت آن را به دو آورد و او صرف کرد پس از آن چیز دیگر فروخت قیمت آن را به دو آورد و او صرف کرد پس از آن چیز دیگر فروخت و همچنین های خود همی فروخت تا اینکه هیچ چیز بر جای نماند نزهت زمان گریان شد و کار به خدا سپرد پس زوء مکان با او گفت که ای خواهر آثار عافیت در خود همی بینم دلم به گوشت سرخ گشته مایل است نزهت و زمان گفت ای برادر من روی گدایی ندارم ولی فردا به خانه یکی از بازرگانان رفته خدمت کنم و چیزی از بهر قوت تو به دست آورم زول مکان گفت آیا پس از عزتها به ذلت اندر همی شوی؟ چگونه مرا هموار شود؟ پس هر دو بگریستند و نزهت و زمان گفت ای برادر ما در این شهر قریبیم یک سال است که در اینجا هستیم و کس به حجره ما قدم ننهاده و از گرسنگی نتوان مرد مرا جزین به خاطر نمیرسد که فردا بیرون رفته خدمت یکی از بزرگان کنم و از بحر تو قوتی بیاورم تا از مرض خلاص یابی و به شهر خیش رویم. پس نزهت و زمان ساعتی بگریست. پس از آن برخواسته روی خود با پارچه ابای کهنه که شطربانان دور انداخته بودند بپوشید و برادر را در آغوش گرفته بر دو جبینش بوسه داد و گریان گریان از پیش برادر به در آمد و نمیدانست که به کجا رود زوء انتظار خواهر همی کشید تا هنگام شام شد و نزهت زمان باز نگشت زوءالمکان آن شب نیز به انتظار بنشست و از دوری خواهر پریشان شد و سخت گرسنه گردید ناگزیر خود را از حجره بیرون افکند و خادم سرای را آواز داده با او گفت که مرا به بازار ببر. خادم او را برداشته به بازار اشفکند. مردم قدس برو گرد آمدند و به حالت او رحمت آورده بگریستند. زو علمکان از ایشان به اشارت خوردنی بخواست. بازرگانان چند درم دادند و خوردنی بهر او بخریدند و بخوراندند. پس از آن او را برداشته در دکهی به کهنه حسیری بخواباندند و ظرفی آب به بالینش گذاشتند. چون شب برآمد مردم از او پراکنده شدند و هر یک به کار خیش رفتند. چون نیمه شب شد زو را خواهر یاد آمد و گریان شد و بر ضعیفیش بیافزود و بیهوش افتاد چون بامداد بازاریان آن حالت مشاهده کردند سی درهم فراهم آورده به شطربان دادند که او را برداشته به بیمارستان دمشقش رساند که شاید بهبودی یابد مرد شوتربان چون درمها بستود با خود گفت که از مردن این بیمار چیزی نمانده چگونه من او را به دمشق خواهم برد پس او را به جایی برده پنهان داشت چون شب برآمد بر سر تون گرما بیانداخت و به راه خیش برفت چون نزدیک صبح شد تون تاب از برای افروختن تون بیامد زوء مکان را دید که بر پشت افتاده با خود گفت مردگان را به دینجا از برای چند انداختهاند پس نزدیک رفته سر پایی بر او بزد دید که همی جنبد بانگ بر زوء مکان زد و گفت شماها بد گروهی هستید پارهای بنگ خورده خیشتن به هر جایی که باشد همی اندازید چون به روی زوال مکان نظر کرد دید که خط به آرز ندارد و خداوند حسن و جمال است دانست که قریب و رنجور است مهرش برو بجنبید و گفت سبحان الله چگونه وبال این کودک به گردن گرفتم؟ پیغمبر علیه السلام فرموده که غریبان را گرامی باید داشت خواسته که بیمار باشند پس او را برداشته به خانه خویش برد و زن خود را به خدمتگذاری او بگماشت زن برخواسته خوابگاه بگسترد و بالین بگذاشت و آب گرم کرده دست و پای او را بشست و تونتاب به بازار رفته گلاب و شکر بیاورد شکرش بخورانیدند و گلابش به کار بردند و عافیت روی بداد و بر متکا تکیه کرد تونتاب خورسند و شادمان شد و گفت خدایا به رتبت پاکانت سوگند میدهم که سلامت این جوان در دست من گردان. قصه اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو